اللهم صل على محمد وآل محمد, الله الله وعليه محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد تاملوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله و الفكر ورأيت الناس يدخلون فيه بله اقواجا فسبح بحمد ربك واسنغفره انه مكان توابا سدب الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد, عالم محمد عبادم عبادم بالله من الشیطان الودود بسم الله الرحمن الرحیم یاد این ایام رو مبارک می‌داریم ایامی که نهزت پرخروش حزف امام رضوان الله تعالی علی به بار نشست و نهزتی که به تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی شد و بیش از چهار دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی را در مرآ و منظر جهانیان به نمایش گذاشت. انقلاب اسلامی تجربه های گرانباری رو برای ما به ارمغان آورد که از جمله اونها مشارکت فقهای بزرگوار و در دغه و پر تعملی بود که در نظام جمهوری اسلامی مشارکت داشتند و به عنوان فقیهان کارگزار نقشا فرینی بی بدیلی رو رقم زدند نقشافرینی فرینی که میتونه به عنوان تلیعه شکگیری تمدن نوین اسلامی در عرصی جهان باشه و نوید بخش شکگیری امت واحده اسلامی در سطح جهان نشست حاضر از سلسله نشستهای علمی است که عهدهدار بازخانی جایگاه و تجربه و تعملات یکی از فقیهان کارگزار در جمهوری اسلامی است فقیه بزرگواری که از اوایل دوران آیت الله بروجردی مورد عنایت شخصیشان بودند و تأملات علمی و نکته سنجیهای درربار ایشان مورد عنایت و توجه حضرت آیت الله بروجردی رفقا الله تعالی علیه بود همراهی اون فقیه بزرگوار با حضرت امام رضوان الله علیه زمین ساز مشارکت جدی و بزرگوار در ساختار جمهوری اسلامی به ویژه در صحنه شورای نگهبان بود و او رو به عنوان یکی از بزرگمردان است به ما معرفی کرد که ما به عنوان فقیه کار بزارد می میشناسیم سلسله نشست های و همایش ها و همدیشی هایی که به عنوان فقیه کارگزار تعریف شده با یاد و نام این بزرگ شروع شده و با مشارکت و همکاری سه محسسه علمی محسسه آموزشالی خوزوی امام رزا به ریاست حضرت آیت الله رشاد دانشگاه با و به با محولیت گروه علوم سیاسی و مرکز پجوشی احمد ها آموزش به جوشی احمد هار شکل گرفته انشالله که بتوانیم با این شروع در پناه عدیه خالصه امام زمان علیه السلام بتوانیم نوی بخش شکگیری تمدن اسلامی بازخانی تجربه های انفقه های ازام باشیم با سلاماتی خدمت جناب استاد احمد دکتر احمد رحمتار هستیم و بعد از اون در محضر اساتید بزرگوار از آیت الله علی دوست و الله قوامی رمزانی و ارائه‌ی علمی جناب استاد علی محمدی خواهیم بود با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و اهل بزرگ همه سروران ما خشکر میکنیم به ویژه از دفتر حضرت آیت الله صافیه گلپایگانی و خیر مقدم ارزو کنیم در محضر جنب اصداد رهدار هستیم و ما برنامه با پوشش تلویزیون اینترنتی و نشست حضور بزار عجمن شکل پاید برسیم سلاح وحوان وحیم سلام و سلوات ما به پیشگاه امام اصر اجلال الله تعالی فرجح شریف درود و رحمت ما به ارواح طیبه شاهدا و روح پرفتوه امام فقیدمون رحمت الله علیه سلامگر به من محضر شما بزرگاران درود و رحمت خاصه ما به روح بلند مرحوم آیت الله از ما صافی گلپایگانی که این نشست به تکریم اندیشه و عمل اون بزرگوار در این دانشگاه پرگزار شده من قبل از شروع جلسه گزارش مختصری رو به نمایندگی از گروه فقه سیاسی و گروه علوم سیاسی این دانشگاه در خصوص این تیپ نشست ها خدمت عزیزان ارز بکنم تصمیمی گرفته شد که ما از فقیهانی که متفاوت جلبه کردن در دوره ما ضمن زمن بر همه اصطلابی محاف... جگه های فقیهی حوزوی خودشون تکریمی داشته باشیم دو دسته از فقیهان رو در واقع شناسایی کردیم یه دسته فقیهانی بودن که علاوه بر اون کار اصلی علمی و تاریخی و سنتی که در حوزه علم فقه داشتن انجام میدادند به تحقق و اجرای فقه هم کمک کردند و خودشون اومدن وارد میدان اجرا و مدیریت در واقع اجرایی فقه شدند. یه دسته این فقیه بودند که با عنوان فقیه کارگزار در واقع طبقه بندی شدن که این نشست اولین نشست هست و انشاءالله در نشست های بعدی از آیات اعظام مرحوم آیت الله شارفودی رحمت الله مرحوم آیت الله شخ محمد از رحمت الله مرحوم آیت الله غمی و عزیزانی دیگر انشالله به ترتیب تکریم خواهد شد و نشستایی در موردونا برگزار خواهیم کرد یه نشستایی هم یا یه دسته دیگه هم از فقیهان شناسایی شدن فقیهانی که به اختزای این عصر و این دوره که دوره برپایی حکومت اسلامی هست آمدن و به صورت ویژه در حوزه فقه سیاسی تعمل کردند. دو سال قبل اولین نشست رو برای این دست از فقیهان برگزار کردیم در سال روز رهلت مرحوم آیت الله امید زنجانی رحمت الله علیه نشستی با عنوان فقیه فقه سیاسی در واقع برگزار شد که در ادامه انشاءالله از دیگر فقیهان بزرگاری که کم هم نیستند در دوره معاصر به اختزای مسئله حکومت اسلامی بخش های فقه سیاسی رو با عنایت و تمرکز بیشتری دنبال کردند، انشالان نشهایی در خصوص اون بزرگبران هم برگزار خواهد شد. ما در خصوص بحث فقیهان کارگزاری دغقه ای داشتیم به اون دغدقه این بود که در هر حال محدودیت های اجرا، یا بگم مختصات اجرا گاهی اوقات باعث میشه که حسب اون نظام ارزش و سنجی که به لحاظ تاریخی وجود داشته و معمولا فقیهان ما چون به دور از ساحت اجرا بودن و بیشتر فقط ممرخ در ساحت دانش بودند مدلی دیگر تکریم می‌شدند و غالبا هم تکریم می‌شدند بس بحث دانشی و اینها بوده و اختلافی هم اگر بوده در حد اختلافات علمی بررسی می شده اما ورود به مسائل اجرایی اتفاقات رو میتونه در پی داشته باشه که همگان احتمالاً نتونن اونها رو درست تحلیل کنن و درک کنن و ممکنه در ارزیابی که علاوه تاریخی از اون فقیه بزرگوار میشه به صورت مثلا یه نقیصه یا کاستی تلقی بشه. حال اینکه خدا رحمت کنه نقوم شید متحری رحمت اللاله در کتاب جاذب و دافع امام علیه علیه السلام به خوبی این مسئله رو طبیعی کردم که برخی چیزا به اختزای خود مقام اجرا و مقام حکومت پیش میاد. اگر معصوم هم حاکم باشه در مقام اجرا اختلافاتی به وجود میاد که یه ادهی دشمن میشن و یه ادهی موافق میشن فقیهانی که معمولاً در ساحت اجرا ورود کردن به اختضای مختصات خود اجرا یک سری نقده ها دامنگیر اونها شده که اون نقدها ها رو هم ما به فال نیک میگیریم از این جهت که در واقع نوعی مجاهدتی متفاوت هست که انسان برای خدا و برای تحقق و اجرای دین خدا در زمان خودش و در حیات خودش مثلا یه نقتهایی رو بشنه این دغدغه برای این بود که ما در واقع اعلام بداریم که ما زحمت فقیهانی که آمدن و در ساحت اجرا زحمت کشیدن و یک سری نقدها و تیرها رو در خصوص فعالیت خودشون به جان خریدن رو عرج می نهیم و قدر می و می که تحقق دین الهی مستلزم این گونه مثلا زحمات خاصه هست این مقدمه بود برای اینی که ارزو کنم فضای پس این نشست ها چی بوده به ویژه این که البته به دلیل وجود همان ویژگی هایی که به اختزای موقعیت اجرای دین به وجود میاد طبعا دشمنان دین تلاش میکنن که از اون اختلافات اجرایی بحانه هایی رو در واقع در بیارن و نکاتی رو در بیارن و در نهایت چونین تلقی بکنن که مثلا فلان فقیه کارگزار یا فلان فقیه سیاسی فرض کنید مثلا با کلان نظام اسلامی مشکل داشته و خب طبعا اینجوری نبوده هیچ بلکه نوع این بزرگاران تحقیقا همه این عزیزانی که آمدن در بدنه نظام حکومت اسلامی ایفای نقش کردن خودشون از بنیانگزاران این نظام هستند و خودشون مایه های تقوییت این نظام بودن اختزای کار اجرا اختلاف در کارشناسی های تحقق دین هست من بعد از این مقدمه انشاءالله وارد اصل بحثم میشم بحثی رو که موضوعی رو که انتخاب کردم در محضر سروران عزیز گزارش میدم مبانی کلامی مرحوم آیت الله صافی رحمت الله علیه هست در خصوص نظام سیاسی اسلام به تغییر دیگر به جورایی مبانی کلامی فقه سیاسی مرحوم آقای صافی گلپایگانی رو اون مقداری که وقت اجازه بده و اون مقداری که بنده تونستم تطبع بکنم خدمت عزیزان گزارش میدم این نکته رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم به دلیلی اینی که هنوز تقریرات مباحث فقهی مرحوم آقای صفیر احمد اولاله منتشر نشده و البته زحمت کشیده شده و ظاهرند آماده نشر هست تحقیقات ما میتونه طبعا ناقص باشه قطعا ناقص هست و ناظر به برخی از مباحثی که در اختیار ما قرار گرفته فقط میتونه باشه بر پایه اون مقدار متونی که دیده شده و تحقیقاتی که انجام شده من چند تا نکته رو نوشتم و اون نکات رو خدمت عزیزان عرض می و در نهایت هم جنبندی ارائه می نکته <تصفح> <تصفح> اول این که مرحوم های اصافی معتقد هستن که امامت یه نظام همیشگیست این دیدگاه رو ایشون در مشخصا در نقد ای از آقایون اهل سنت مطرح می‌کنند که معتقد می‌شن که امامت یا رژیم انقلابی و محدود به یک دوره انتقال هست. خب متکلمین تقریبا زیادی هستند که به بهانه مسئله ختم نبوت مطرح کردند که سلام علیکم سلام. عزیز. آخر. شما نویسندگان با روکرد کلامی مطرح کردن که چون ختم نباوت صورت گرفته توضیح اون از ختم نباوت این بوده که جامعه به یک رشد سیاسی رسیده که بعد از اون دیگه نیازی به هادی، امام حجت و اینها نداره به این علت گفتن که انگار ختم نباوت مساویس با ختم حجت و اگر مسئله ای به نام امامت در تاریخ اسلام مطرح بوده و عنوان یک دوره انتقالی هست که موقت هست برای بعد از ماجرای ختم و نبوت مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه معتقد هستند که نه ختم نبوت مستلزم ختم حجت یا به تعبیری ختم امامت نیست دیدگاه حتی می فرمان که دلیل اصلی این هست که می فرمان چون عالم تکلیف ادامه داره تا تکلیف هست حجتی باید باشه که تکالیف الهی رو مطرح بفرمان این هم که در روایات ما و در باورهای اعتقادی ما ائمه اطهار علیهم السلام منحصر به دوازده تن شدند خود این هم دلیلی بر این نیست که یه جایی دوره امامت تمام میشه چونشون می فرمان که دوره عالم تکلیف میتونه مقارن باشه با دوره کل امامت حسب باور ما امام آخرین ما حضرت مهدی علیه السلام زنده هستن و تا آخر در واقع دوره تکلیف در واقع هستن مرحوم آقای اسافی فرمودن که امامت یه عقیده تاریخی نیست که مالیه مختئی باشه و تمام شده باشه و ربطی به زمان ما و شرایط الان ما نداشته باشه من بعداً دلالت این گزاره رو در حوزه نظام سیاسی اقتصادی خدمت عزیزان عرض می‌کنم نکته دومی که می‌فرماون این هست که امامت و خلافت امر الهی هست حتی اگر بپذیریم که جامعه اونقدر درشت سیاسی تاریخی پیدا می‌کنه که می‌تونه خودش یک سری کارا رو انجام بده حدی این کارا اندازه نیست که در واقع بتونه مسلحت تام نهایی و کامل خودش رو تشخیص بده به طبیلی دیگه رشد سیاسی جامعه اندازه نیست که بتونه مثلا فرض کنید که حادی معصوم رو تشخیص بده مقام اسمت مقامی نیست که بغول مادون اسمت بتونه اون رو درک بکنه چه با؟ اجماع، چه با روکرد اکثریت چه با روکرد اقلیت و نخبگانی در هر حال اون یه نصد میخواد یه در واقع انتخاب از جانب خداوند میخواد امامت و خلافت یه امر الهی هست <تصفي> به همین علت از همین زاویه مرحوم آقای صافی به اولگوهای تمامی اولگوهای دموکراسی موجود که مطرح شده نخت هایی رو وارد میکنن میگن اولگوی دموکلاسی توانی اینی که بتونه مثلا فرض کنید حق رو نمایندگی بکنه نداره ممکنه مثلا در یه انتخاباتی اکثریتی رعی بیاره که به واقع حق با اقلیتی باشه که رعی نیاورده حق یه مغوله جدا از مسئله اکثریت و اقلیت است. نکته سومی که میفرمان این هست که <تصفيق> وجود یک سری مکانیزم های اداره مثل شورا مثل بیعت و در روزگار ما مثلا دموکراسی خودمختاری و اینها نمیتونه دلیلی باشه برای ختم رسایت و ختم امامت چون بعضی ها مطرح کردن ظاهرا آهای دکتر شریعتی اگر شبا نکنم تو اون دوره های یا الگوه های اداره دینی جامعه مسلمین مطرح میکنه که مثلا دوره نبوت داریم دوره امامت داریم دوره بیعت داریم دوره شورا داریم هم دوره بندی میکنن و میان مرحوم آقای صافی میفرمان که نه این الگوه های بیعت و شورا و دموکراسی نه الگوه های خردی هستن در زیل ساختار امامت و وسایت و اون ساختاری که کلان هست همیشگیست و فائق هست و کل این ساختارها خود ساختار امامت و بسایت هست و به اختزای زمانهای متعدد ارز کنم که الگوه های بیعت و شعورا به عنوان مثلا تاکتیک های عمل در واقع به کار گرفته میشن برای مسابیق خاص. یک نویسنده سنی ادعایی دارن بر پایه نقد اون مرحوم آقای صافی ادعای دیگی رو مطرح میکنن که فرمان امامت و خلافت یه چیزه، دو چیز نیست. یه نویسنده سنی داشت این هست که امامت اختصاص داره به امر رهبری فکری جامعه و خلافت اختصاص داره به امر رهبری سیاسی جامعه و رهبری فکری امریست و رهبری سیاسی امریست حتی اگر بپذیریم که مثلا آقایان شیعیان میگن اعمه معصوم علیه مسلم به لحاظ فکری و علمی جایگاه سنگین تری داشتند و بالا بودن میگه اشکال نداره عملا رهبری سیاسی جامعه دست خلیفه باید باشه و در واقع یه جورایی دارن جمع میکنن بین عقیده شیعه و عقیده تسنن و میگن هم شیعیان حق دارن که میگن امه ما باید باشن به, مانوا... به مسابه در واقع رهبران فکری و هم تسنن حق دارن که تن دادن به خلافت خلفا به مسابه رهبران سیاسی جانه مرحوم آقای صافی رحمت العالمی فرمان که نه اصلا این حرف مستلزم جدایی دیانت از سیاسته و طبعاً عموم متفکران مسلمان اعم از شیعه و سنی هم چه حرفی رو قبول ندارند که امر دینات از سیاست جدا باشه رهبری فکری یه چیزی باشه و رهبری سیاسی یه چیز دیگه ای باشه به ویژه اینکه این در واقع مدعیان نتونستن توضیح بدن که مثلا در موارد اختلاف بین رهبران سیاسی و رهبران فکری باید چه عملا چه باید کرد اگر رهبری فکری مثلا دیدگاهی داشت و رهبری سیاسی دیدگاهی مخالف اون داشت ایشون می‌فرمان که نه اصلاً امامت و خلافت یه امر هست و هر دوی اونها هم در واقع جایگاه امر فکری رو دارن رهبری فکری رو دارن و هم رهبری سیاسی رو نکته آخری که می‌فرمان این هست که عرض کردم این نکاتی است که بنده جماعوری کردم و به اختضای وقت دارم به اختصار عرض می کنم فرماشت مرحوم های صافی در این حوزه زیاد هست فرمان که امامت یک مسئله موروثی نیست اگرچه ما در روایاتمون مثلا داریم که مثلا فرض کنید بعد از مثلا امام حسین علیه السلام پسرش بعددشون پسرش بعددشون پسرش, پسرش پسرش پسرش این امر مشتبه نشه که مثلا انگار امامت یه امر موروسی هست یا اگر در برخی از تعاویر روایی و غیر روایی اومده که اممه ما مثلا ذریه حضرت زحرای مرزیه سلام الله علیه هستند گمان نباید بره که امامت یه ذریتی است و است به تیفی از آیات قرآن و روایات اینجا تمسخ میکنن مرحوم آقای صافی مثل الله و اعلم و حسی رسالته و فرمان که نه اصلا رسالت یه قاعده خودش رو داره و مبنای خودش رو داره کما اینکه که مثلا فرض کنید در بین اعمه علیه مسلم خب اعمه فرزندان دیگری هم داشتن فرزندان حتی بزرگتری داشتن اما اینجوری نبوده که مثلا کاملا ملاک انتخاب امام بعدی فرزند اون باشه که من یه جنبندی مختصری ارز بکنم حضرت آیت الارمزانی بزرگوار تشریف آوردن وقت رو خیلی نگیرم از خواهیم میکنم از حاجه ها چون جلسه دیر شروع شده بود و ما وقت شما رو گرفتیم ببخشین حضرت های صافی در یکی از گزاره هایشون میفرمان که میزان اطاعت از نظام سیاسی در واقع یه تابعی از میزان نسبت نظام سیاسی با نظام سیاسی امام علی علیه السلام با اولگوی نظام سیاسی حضرت علی علیه السلام در واقع برداشت من این هست که از نظر مرموم آقای صافی اطاعت از نظام سیاسی مطلق نیست این معنا که صرف اینی که بگیم یه حکومت اسلامی برپا شده و چون مثلا امام رحمتالله فرمویدن که حفظ این نظام از اوجب واجبات هست به صورت مطلق در واقع اطاعت از نظام سیاسی صورت میگیره. انگار مثلا خود نظام سیاسی مقیده به یه قواعد ای هست احکام شاملهی هست به و نام حق و حقیقت که قاعدش اینجوری میشه که به میزانی که نظام سیاسی در واقع تابع حق و حقیقت هست که الگوی عملی و تاریخی حق و حقیقت رو نظام سیاسی امام علی علیه السلام میدونن قابلیت اطاعت داره و نه نه خب این کلام البته مجمل هست و به لحاظ اندیشه سیاسی و فقه سیاسی جا داره که واقعا این باز بشه که مثلا تشخیص تطابق رفتار یک نظام سیاسی با مثلا فرض کنید حق و حقیقت یا اولوی امام علی علیه السلام با کیست یا به تعویر دیگر چه مقدار انحراف از این تطویق باعث میشه که مثلا شهروندان عملا از نظام سیاسی نظام سیاسی که عنوان حکومت اسلامی داره در واقع اطاعت نکنند. به نظرم میتلبه نظر به اینی که بسیاری از فرمایشات کلامی مرحوم آقای صافیر باز نشده یا دلالت های سیاسی اونها تشریح نشده توسط شاگردانیشون یا اقل چون منتشر نشده بنده در درستات هم نبوده و ندیدم پیشنهاد میکنم ببیجی اینی که برخی از حضار محترم از اعضای بیت ماعظم و لرحمتالال حسن یه گروهی مثلا لجنهی شکل بگیره و مباحثی رو که میتونه تفسیرهای متفاوت داشته باشه متناسبه با دیگر مبانی مرحوم آقای صافیر احمد اولاله تغریری در واقع واحد و منسجم ارائه بدن مثل این نکته آخری که ارز کردم چون نکته واقعا دو پحلوس و میشه تفسیرهای مختلفی در واقع از اونا داشت یه نکته ای هم ایشون وقتی می که امامتی عقیده تاریخی نیست و مربوطه به یک شکل کار نیست یک شکل و یک سبک زندگی در دوره خاصی از تاریخ نیست و عمومیت داره این جمله هم به نظر من جا داره که باز بشه به این معنا که ببینید در واقع الان ایده این هست برداشت اولی از این کلام این هست که امامت یه است و یه اصولی داره که این مبنا و اصول در زمانها و مکانهای متعدد به اشکال مختلف قابلیت تحقق داره قابلیت بروز داره این دوباره خود این اشکال و فرمها در نسبت با اون مبنا و ایده نیاز به تغییر داره آیا مثلا فرض کنید که هر گونه شکلی و هر گونه مبنای قابلیت تطبیق خواهد داشت طرفداران مثلا دموکراسی الان ادعا می کنند شاید مثلا یک قرائت و تغییر از کسانی که در دوره مشروطه هم بحث مشورت اینها رو تطبیق دادن بر دموکراسی ادعا این بود که مثلا این غالب همان دینی است، اما حساب نکته‌ای که از مرحوم آقای صافی رحمت الباله نقل کردم مرحوم آقای به سراحت اولوی دموکراسی رو مصداقی از تحقق مثلا امروزین شکل یا مبنای امامت در روزگار ما نمیداند و دموکراسی رو نقد میزنه این که امامت در ادوار مختلف در شکل‌های مختلف میتونه جلوه بکنه نیاز به یه تغییر داره که مناسب با دیگر موانی معظم الله باید در بیاد و در کلام اجمال بود من از میکنم ارزم رو اینجا تمام میکنم و امیدوار هستم که هم در بیت معظم الله هم اینجا خداوند ما توفیق بوده در گروه علوم سیاسی و در گروه فقه سیاسیمون بتونیم برخی از اندیشه های معزم و له رو تبدیل به فرمتهای های پایان نامه بکنیم در دانشگاه اون مقداری رو که ظرف خود برای دانشگاه اختصار داره و سلام علیکم و رحمت الله و بر الله و برکاته الله و رحمتنا و برکاته و سلام علیکم السلام خیلی ممنون تشکر می‌کنم جناب فرصتی که, که تشکر کنیم به از این سر وقت تمام شد ما در قسمت آتی تا ساعت <متصف> 11 دو بخش داریم جناب باید رمزانی کار ساعت جهونی حالا دا تباوت داره یک نیم ساعتی نیم ساعت هم خدمت بعدش آجای باید الله علی دوستش این ساعت هم درنامه دارم من چکیده دیفت عرض کنم جنبا من به وقت چون وقت تنگیش های عرض من که جنبه. موهم بود دو سجمله جنبا جای رهدار در واقع یک از نگاه کلامی و سیاسی رو از منظر اطلاع صافی تقریر فرمودن از این منظر که امامت ویژگی هایی داره هم نظام است و هم نظام دائمی و همین که با افتضاعات زمان نمیشه اون رو ماهیتش رو تغییر داد و دو بخش ثابت و متغیر رو بعد لحاظ کرد اون بخش ثابت هست که مال و امامت تقلیل پذیر به صرفا رهبری فکری نیست رهبری سیاسی هم در اون هست از اون طرف ناموروسی هم هست و مهمتر این که به طور کلان میتوان بگیم نظام امامت مبتکی بر قواعدی است که نه با نظام دموکراسی به صورت اساسی یکسان انگاری می کرد و نه اینکه اختزالات تاریخی باعث می شود محدودیت‌های عملی برای امامت اون ماهیت رو تغییر بده و ماهیتش رو دگرگون بکنه